لبيك الله الرحمن لبيك لا لا لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا جريك لك لبيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف العنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد على روز دهم زل حجه در روز عید حالا قبل از این شروع کنم یک تذکری داده شد تا ما هم بده این تذکر را. تذکر مطعلب خانم ها هست که بعضی از خانم ها لباس سفید می دوزند که اونجا سفید پوش بشن. یعنی فکر میکنن اونها یک نوع ااهران میدارن این ها ثابت نیستن. آوار خانم مناسب هم نیست. که لباس کلا سفید بشه، حالا چادری در سر سفید میکنه، لباسها سفید، فکر میکنه یک نوع فضیلتی هست. نه فضیلتی نیست، ثابت هم نیست. حالا شما اونجا میبینید خانم جاہ دیگی می آین ها رو از جوایز دیگه میآیند با لباس سفید، چادرها سفید، اما اینا ثابت نیستن. هیچ کس از ازواج مطهرات این کارو انجام نداده در هیچ حدیثی هم نا آمده برعکس آن ممنوعیت هست ممنوعیت شیست ممنوعیت ظاهر کردن زینت در مقابل نامحرم هست نوی زینت را ظاهر کنه زینت هم در لباس هست پس بنا این لباس های سفید رو تهیه نکنی ندوزی با خود تا نبری یک سالی ما بودی و یه خانمی بیرون کرد داشت رفته حرم کامل سفید پوش بود و لباس و کفش رو همه گفته هیچ کاری در شده؟ حالا بذار برن گفتن نه برگرد لباس تواز کن ناراحت شد گفت حالا این کار درست نیست من داری میایی برد لباس ها رو با لباس برو که پوشیده کامل در لباس بسلا پرده باشی لباس های پرده لباس رنگی اشکال نداره اما لباس سفید که مثل مردان خود را درست میکنن بخصوص حجاجی که از افریقا می آین حجاج افریقا اونها خیلی عجیبترند خانمها لباس صفی، چادر صفی امامی هم می بندند حالا میری، ان انشاءالله می بینید بعضی خانمها مثل آقایون امامی بستن، چادر سر کرده، داخل حرام اومد حالا از این حالات متاثر نباشید اینها دیگه معلومان نیستن. تو اسلام اصلاحیم تو اسلام بینها تأکید نشده و امری نه آمده لوازم طبق رسومات یا عرف خودشان انجام دهند عرس را به زار استنار و شریعت را بیچاسی به شریعت حالا روز دهم دوباره احکام روز دهم را میگم مختصر که سری برسیم به مدینه طیبه شهر اشاق منبع شریعت اسلامی مرکز وحی الهی پایگاه بزرگ اسلام حالا دیگه بریم مدینه منوره حالا احکام را سری سری حالا تمام کنیم چون آخرین شب هست و تمدید هم نمیشه و باید تمام کنیم الله حالا روز دهم ده روز دهم هم از این که هم شروع کنم حالا هم میگم آخر هم میگم این کتاب چهی که ما میگیم این رو کردیم جمعواری کردیم خود ما کردیم جلوی در خروجی مسجد آراشگاه همونجا دوستام مثل که گذاشته هم کسان قسان از اونجا تهیه کنن اون مبلغ کپیشو بعد باید بدن چ اونهایی که تحییه کردن این توصیه رو کردم به من حال من اینجا میگم دیگه دوستداری همین کتابور از اونجا تهیه کنید و هر چه گفتیم انجا گفتی در او هستن و این با خودتان ببرید چون راحت میتونی حالا انجا گفته شده اونجا میخواانید ولی ش خیلی آسان میشه و غیر از این هم یه نرمفضانی هم همین درست کردن اگون داخل گوشی ها نصف کنی که راحتر میشه نیاز مکتاب چنید هر جرفتی میزنید باز میشه استفاده میکنید و حجی درست با یه حجی سالم انشاءالله که مقبول و مبرور انشاءالله برمیگردید و میآید حالا احکام روز دهم. روز ده زیل زلحجه با اول شبش داخل مزدلفه هستیده مزدلفه هفت تا بر می دارید بعد از طلوع فجر یعنی بعد صبح صادق بام،, بام دمید باید در مزدلفه باشید اگر همگام دمیدن بام در مزدلفه نبودی رفتی بودی بیرون از مزدلفه یعنی رفتی بودی منا باید برگرد دوباره مزدلفه اگر بر نگشتید یه گسفندی واجب میشه پس پس با بام داد داخل مزدلفه وقت داخل شد فجر رو می به قبله می که تسبیح ذکر کلمه لا الله می خونید دعا می و قبل از اینکه طلوع آفتاب بشه هر کس به طرف منا خانوها که ناتوانن مسنن پیرمردها بیمارها که نمیتونن بشینن اینها میتونن همون شب خود را به منا برسانند اما امروز اونهایی که از مسیرهای غیر از ایران میرن ایرانی که همه در یک جا متمرکز هست خیمه ها ایران همه در یک جا هستن پراکنده نیستن اگر از جای دیگر کسانی میرن خیمه ها تا مزدلفه رسیده هستن یعنی همون خیمه های منا یه بخش بزرگ از اونها در مزدلفه هست اگر کسی رفت اون شب داخل خیمه شم خوابیده اشکالی ندارید همون خیمه‌ای که در مزدلف هست و جاگی از پاکستان میرن یا از جاه دیگه میرن خیلی از خیمه‌ها ها تو مزدلف میفتن چون جا در منع خیلی کم هست اگر کسی خیمهش در مزدلف بود شما نه این ا از ایران میرن اونها از پاکستان میرن اگر خیمهش در مزدلف بود و از ویسلا از داخل خیمه رفت اون شب در مزدلف و داخل خیمه رفت اشکالی نداره. و مزدلفش درست است و دمی لازم نمی شود پس دوری که اطمانده به طلوع افتاب حرکت می به طرف منا حرکت بین منا و مزدلفه تابلو زده وقت میری بیرون نویشتی که نهایت و مزدلفت ان انتهای مزدلفت تابلو بزرگ نهای مزدلفه. پشت نگاه بکنی اینجوری می که بدایت و مزدلفه. پس به بعضی خارج شدی. جلوتر تابلویی هست که بدایت و منا بین این دو تابلو یک رودخانه‌ای هست وادی خالی هست این همون جایی هست کهش بر اصحاب فیر عذاب ناظر شده وادی محسر میگه از اینجا سریع عبور کنی اونجا فرصت نیست ازدهام اگر فرصت شد در این محل دیگه نیستیده یک توصیه بعدی با خودتان وسایل به منا نبرید چ ووسالا برگشت میخوان در هنگام ورود در مننا ازدهام و همین وسائلی که به صلاب بخچه هایی که دارید کوول بارهایی که پشت وستیر مشکل سازند تلفات همینین ها میدن معمورین شما رو نمیزارند تا شما رو میگیرند جمع میکنن دور میاندداند اگر وسایل قیمتی هستن پس خودتان لطف کوی نبرید قبلا داخل خیمه بذارید. چونجا شما قطتن گرفته میشه همین نه مشکل سازند. در سنگام و رو در منا مسیرها مختلف و سایه کنید از مسیر سایبان وارد بشید و وقتی که میری از مزدلف هست سمت چپ ما سایبان هست شاید حالا امسا شاید همه رو سایبان کردن اما سایبان قبلا سمت چپ بود از مسیر سایبان برید که اونجا برای سیستم خونکیش کمی بهتر هست سایه هست و زیاد نمیشید و تلفات نمیدین اجل نکورین مسافت خیلی دوره بردبار باشید عرق میکنی اذیت میشی آب با خودتان بر آب هست تو مسیر آرام آرام میرید میرسید به جمرات جمرات داخل منا هستند از مکه وارد میشی اول جمراتن از مزدلفه که میرید آخر جمراتن حالا مستقی اینجوری میروید جلو جلو به جمرات میرسید حالا به هر طبقه شما راهنمایی کرده همونجا برید اطررار نکنید من این ور میره چون نمیزارش شما رو میزنن. اینقدر معمور میرسه اونجا چون که اون نظ به هم میخوره. هر مسیر یک افتادی هم مسیر بگیر برو حالا طبقه دو میری طبقه سه میری هر کجا رسیددید از اونجا بزن طبقه دو سه با پایین با هم تفاوتی نداره که از هم کف زده باشه یا از طبقه اول دوم بزنه شک نداره و برابر حدش درسته. پس نگران هم نباشید احتمال داره که مسیر شما طبقه دو باشه در طبقه سی رسیدی شما چون مسلات تا اون تنظیمما کمجو دا میری کم کم بالا میرید و به طبق دو سه میرسید اون اونتاف هم به همین صورته اگر در طبقه دو سه تواف کردی فرق نمیکنه چی شمارک سنگه ها رو تواف نمیپید امری لای بر اوجا بچرخید. پس هر طبقه تواف کردید حدی شما درست هست. پس می به جمرات وارد شدی هفت تا سانگلیزی گرفتی سنگه رو از مظترف آوردی اگر سنگ نجاست مو سنگ ها رو بشورید اگر نجاست نبودن چون با سنگ نجاست مکروہ است سنگ ها باید به اندازه خسته خرما یا لوبیا باشن سنگ طلب بب... کلوخ بعد نمیذاری چون که با کلوخ زدن مکروہی بعضی فکر میکنند که من حالا حالاتی حساب شیطان رو اینجا الله شما حساب این با این سنگ باشه این سنگ به زور بعضی رو میبینی اونجا با کفش و قلوخ میزنان حالا داد و بیداد میکنن بی حالا وقتی که ما بود یک خانومی با ما بود سنگ ها رو پهل سرش خواین کرد و یک یه برد داشت که علی دعاای بلوچی کرد کلام از گره گفت حالا بیاند اند از چیه چی چی خبره اینجا اصلا وانی بو ناراحت بود این حرکات درست نیستن اینجا این کارار رو کنده پس با این هفت تا سنگ دیزی برمی وقتی وارث شدید پس جمره اول این نه این جمره اولی نه اولا این رها جلو، کنید این هست جمره کبرا اینجا جدا کرده، اول می رسید نوشته نویشتید جمعه اولا این جمره اولی نه این رها کن برا جلوتر ایک وسط از اینو هم نمیزنید میری میرید جلوتر آخری جمعه کبرا هست همون شیطان بزرگ این اینجا اینجا که می رسید از ورودی ورودی هم انجام، آوج ازدهام ورودی جمعه است. همه اینجا سعی میکنن بزن برو. اینجا خیلی سخته، بارگاش سخته، تلفات میدی، دوستان گم میشن، پس سعی کنی از این طرف یا از این طرف مستقیم برو جلو، از او دور بزن دور بزن انجا بذار انجام میست. دار میزنی میستی. به صورتی که وقتی میستی قلب تقریبا اینجوری میشه. مناس، سمت راست، مکه سمت چپ، اونجا میستی. بسم الله الله اكبر و اکبر وال لایل هم یا رقم لشاطان ورزن لل الررحمان الله مجعل و حجم مبرورها و سعی مشکورها سنگ پرتاب کن. اگر جلوبیید اینجا برای جدید ازدهام است اما اون آخرش که میرسید اونجا خیلی خلوته، راحت میتون اینجا اقرار خود جمعره بیی سنگ ها رو پرتاب کنید. پس بسم الله الله و سنگو سنگ و پرتاب کن. دعا رو بلدن بودید اشکالی نداره بسم الله الله اکبر کافی هست سنگ اول خوردن سنگ به این دیوار هم لازم نیست این دیوار درست کرده خیلی بزرگ درست کردن با بادامی روش گذاشتن مانند این جمره ها که بعضی وسواسی ها فکر کنم باید سنگ من بخوره در اصل یک ستون کوچکی بوده خیلی بزرگ گسترده دراز تا اونجا که خیلی درازه سنگ شما یکونیم متر هم افتار نزدیکش و از شما عدا شده اما حالا راحت کردین این چار درست کرده داخلین این اگر افتاد حد شما درست است و جمره شما تمام پس هفت تا سنگ ریزه میزنید حرکت میکنید به طرف جلو برگشت نه چون باش با بری جلو دیگه میری جلو اینجا دعا کردن نیست در جمره آخری دعا کردن نداریم میری جلوتر عمل اول بعد از اون عمل دوم کشتن قربان این, وا... این ترتیب واجبه این ترتیب واجبه نقطه که اینجا بگم شاید اونجا ترتیب اشتوا کردی پس اول زدن جمره بعد از اون کشتن قربانی بعد از اون سر تراشیدن این سر عملا واجبه پس اول به شیطان سنگ میزنی اینو که اشتوا نمی کنید اما قبل از قربانی سر را نتراشیده قبل از قربانی اگر کسی سر و تراشید یک گوسفند واجب میشه پس اول بعد از زدن سنگ به این میری دنبال قربانی یک نماینده مییره قربانی شما رو میکشه به محض اون به شما تماس گرفت اعلام تک قربانی رو کوشتم بعد از اون بسما از احرام بیاد بیرون قبل از اون کسی سر و تراشید یک گوسفندی واجب میشه این نوتر متذکر بشم شاید اونجا اشتباه کردی و بعضی به شما گفته اشکال نداره چون در نظر بعضی از مذاهب اشکال نداره چرا نبی کریم استادی بوده صلی الله علیه و رسول الله قبل از که من بزنم دوستا کشتم فرمودند که به ولا حرج پروا نيس برو کسی دیگه ما گفت يا رسول الله قبل از که من بکوشم سرو تراشیدم فرمود اف ولا حرج اشکال نداره رو اینجا نبی کریم منظوری این نبود که هیچ نمیشه یعنی حجت باطل نشده به این اختلافی کردی تاخیر و تقدی با جریمه جبران میشه چون همین حدیث به طرق دیگه آمده فرمودن حالا برو گسفن دو بکش که جریمه داری تو این یعنی حج باطل نمیشه اما گسفن لازم میشه پس ترتیب واجبه یک زدن این شیطان اول بعد کشتن قربانی بعد تراشیدن سر این ستا واجبه و با باید ترتیب باید بره. حست تازمانی قربانی نکشتن و بسماء اعلام نکردن سرور نمیتراشید در اهرام میمانید لباس بیرون هم نمیکنید پس من آبرید رفته اونجا گوسفند کشته شده تماس گرفتند این وکیلی بفرستی مطمئن باشید تو ماستسها پول واریز نکنید چرا؟ چون حالا که کشته میشه معلوم نیست هزاران نفر واریز میکنند میرند که کشته میشه معلوم نیست افرادی که نمیشناسید پول بونه ها ندید. چون دوباره کشتنش مطمئن نیستی. افرادی معتبر کسانی که میشناسی اونها رو وکیل برای کشتن میکنی. تو کاروانا ایران الحمدللہ که از هر کاروان یک نمائنده میره اونجا حاضر میشه میبینه میکوشه و اعلام میکنه. اینجا برای شما از این طرح بری مشکل چندن پیش نمیاد. حالا گوسفند کشته شد. گزفند کشتن و از اون سر رو میتراشی بیرون لباس رو میپوشید. حالا در این صورت احکام شما تمام روز یعنی از احرام بیرون شدید همه چیز حلالن الا خانو حلال نیست اینا دی چیزا حلالا لباس میپوشی عطر میزنید و همه چیزا الا خانو هنوز حلال نشده مستقی میری مکه مکه مکرمه تواف زیارت تواف زیارت فرض هست تا زمانی این تو صورت نگیرد خانو اصلا حلال نمیشه والا تا آخر عمر هم باشه پس این تواف فرض هست تواف زیارت را روز دهم ده سعی کنی انجام بدهید اگر روز دهم ده نتوانستی انجام بدهید از زهرا و دوستاند اگر نکشتی از احرام بیرون نمیایید را روز بعد یازدهم بکش یازدهم اگر نشد دوازدهم بکش و بعد تو احرام بمانید و تا روز تا غروب دوازدهم فرصت برای تواف دارید اگر تا غروب دوازدهم تواف نکردید. واجب گوسفندی به خاطر تأخیر واجب می شود و یک جریمه اونجا پرداختونی و این سخت این است جریمه حرام فقط در حرم ادا میشه اینجا ادا نمیشه اونجا بعد جریمه همونجا واریز بشه همونجا بعد گوسفند همونجا کشته میشه پس بنابراین بعد از اون پس گوسفند کشته شد بیاید مکه مکرمه طواف زیارت را انجامید با لباس عادی طواف انجام میده. اما اونجا باز هم رمل هست. درست شوات اول باید باند باید پهلوانه ها بدوید و خسته هم هستی اموال یکار و سنتی انجام بدهید تواف میکنید نیت که من نیت میکنم تواف زیارت بکنم این لازم نیست همین که تواف میکنم کافیه اگر کسی اشتباه نیت که نیت تواف نافل هم بکنه الله رب العالمین به جای تواف فرض قبول میکنه همین نیت فرضی که من تواف میکنم تواف بیت اللہ را میکنم همین نیت فرضید چنان توافی میکنه شاید اون توک اسم را فراموش کنید تواف زیاره شد امکان در این نامه ها را فراموش کنید پس مشخص کرده لازم نیست همین که من تواف میکنه کافیه تواف بیت الله را میکنید بعد تواف بیت الله همون توافی قبلا گفتن با همون شرایط با همون کیفیت بعد میری صفا و مروه صفا و مروه تمام شد حج شما تمام فرائز تمام واجبات مودن با تواف فرض تو حج فرض تمام بعد از انجام تواف فرض خانومم هم حلال میدید صفا مربع میکنید بعد اینجا تمام دیگه اونجا سریح هم تراشیدن نیست چون قبلن سارو تراشیدید بعد از اون برمیگردید مناح حالا شما کی فارغ میشید امکان داره ساعت یک شب باشه ساعت دو شب باشه ساعت سه شب باشه بستگی در روی سرعت عملی داشته باشید بعد از اونجا دوباری ب حالا 6 کیلومتر راه هم نیست اون 3 روز اول کل و وسایل نقلیه کلا مسدود ماشین نمیزاره تردود کنه تمام راه ها پیاده هست امکان داره موتوری بیاد ماشینی بیاد حالا پی کی برسه بگه اگه صدر یال میگیرن دو سریال میگیره شوار تامنها میرسونه سوار نشید چرا چون شما اگر اولین بار باشه خیمه رو گم میکنید چون یک جشن راه ها میکنید اصلا تا خیمه بعد همون راه رو دوباره برید شاید برای هفت کیلومتر دیگر هم برید. ما که رفتی یک سالی دوستان بودن بودند و منو مکه رها کردند. گفت اینجا منتظر می با هم جمع بشین بریم. زمانی که من رسیدم هیچ کس نبود. بود نکفشی بود هیچ کس از دوستان نبود. من با دو خانم. ح مادر تا مادره من بودن و هیچ کس نبود. پیاده حرکت کردم. پیاده رفت هم ساعت دو رسیدم می آبی خوردیم و وضو گرفت خیمه هیچ کس نیست ای اینها کجا رفتن اون شب خوابیدند صبح نماز فجر خوندیم صبح نهان روز بعد بعد از دور رسیدن بعد از دور روز بعد رسید گفتن کجا بودی؟ چرا ما رو رها کرد گفتن حالا ما دیگه دیر کردی ما با ماشین آمدی ما رو پشت تونل ها پشت کوهای منا دور پیاده کردی راه رو گم کردی خسته قورته خیلی اذیت شدند این امکان هم هست پس این احتمالات هستن دور شما رها میکنن روی پل ها رها میکنه راه دوباره گم میکنی مشکل ساز میشه سایقری باد مستر هماهنگ بری سنا اگر اذیت بودی نمیتونستی برید حالا بعضی نمیتونه واقعا نمیتونستی بری میدونس حالت من از پا در افتادم همونجا تو حرم میخواب روز بعدش از اونجا سنگ رو برو جمراتو بزن بعد برو خیمه استراحت کن تو این سنت هست واجب نیست خوابیدن در مینا اگر نتونستید صحیح میتونید که مسیر بخوابید. روز یازدهم، روز یازده حالا پس روز دهم ده جمرات را زدنش که از کی شروع می دیشک گفتن از بعد از طلوع افتا بیمار مریض و معذور قبل از طلوع افتا بیتونه بزنه دیگران نمیتونه با طلوع افتا سنگه رو را میزنید اگر بعد از طول و این فرصت نشود، بعد از زوال بزنید بعد از زوال اگر نزدید باز مغرب مکروه باز مغرب بزنید تا بامداد فرصت هست اگر تا بامداد سنگو نزدید اینجا یک گزفن واجب میشه و روز بعد بعد دو بار بزنید این نصف روز ده روزی روز میری خیمه خیمه خوابیدید روز یاز ده سنگ ها بعد از زوار شروع میشن بعد وقتی وقت ظهر وقت داخل شد اون وقت میزنن قبل زوار نه بعد که نماز زوار بخانید و مستقی میری حالا اینجا دیگه روی سه تا جمره سنگ میزنید یعنی 21 و یک سنگ باید با خودتان بر بدارید میرسید روی جمله اول این جمله اولاین اینجا یا اینجا سغراحه میگن این هست میرسید اول هفت تا سنگ ریزه و همون کیفیه گفتن میری جلو بسم الله الله اکبر رقمن لشیطان و رزن لرحمان اللهم جل و حج مبرور و سای مشکور میخوانی سنگ و پرتا میکنی بعد میری جلوتر رو قبل میستی دعا میکنی تسبیح ذکر دعا میکنی بعد میری جلوتر رو جمره وسطی وسطا این از اینجا به همین کیفیت جلو دور میزنی منا سمت راست مکه سمت چپ. سنگه ها رو میزنی چند قدم جلوتر میری روی قبله دعا میکنی بعد میری جلوتر جمره آخری اینجا میرسی به همون کیفیه سنگه ها رو میزنی اما اینجا دعا نداریم در جمره آخری دعا نیست مستقیم میری برگشت مستقیم بر نگردیم معمول ما شما رو نمیزارن مستقیم برو چون برگشت بر میگرده تلفات میدن چون کل موج جمعیه داره جلو میگرد پس مستقیم رو تا آخر میری و از خود جمرات میری بیرون دوباره مسیر برگشت اینجا دیگه مکه نرو برگرد برو خیمه برو خیمه بخواب تا فردا روز دوازدهم روز دوازدهم اونجا دیگه دوباره بعد از زوال میای دوباره جمرات 21 تا سنگ برمی‌داری جمرات اولی دومی اولی سنگ زده میشه چند قدم جلوتر دعا میکنید. میری وسطی تا سنگ میزنی چند قدم جلوتر رو بی قبله دعا میکنی آخری اینجا دیگه بازم دعا نداره از همینجا مستقیم رو مکه برگشت به خیمه نیازی نیست حالا دیگه اینجا احکام شما تمام چون آخری روز دوازدهم هم آخرین روز جمعات هست پس روز دوازدهم هم بازدن سنگ ها حالا دیگه به طرف مثلا مکه حرکت وسائلی که دارین با کاروانه ها بفرستید سعی کلی در منا وسایل نبرید چون برگشت فریاد زیاد میشی وسایلش وام جامی مونه، پس اگر وسایل بودی مقتصر برد مستقی میرید مکه. سنت اصلا مجدد در جلو مکه مسیر اونجا سرعت، اما چون اون مسیره کلنا ناپیدا هستن کلا زیر آسفالت و اتوبان رفتن شما جایی رو پیدا نمیکنید. مستقی میرید کجا؟ مکه. اما تغییر. باید قبل از غروب از منا بری بیرون. تابلی که سمت شما تابلی روی کوزده نوشده نهایت منا. اون تابلی عبور بشه قبل از غروب. اگر قبل از غروب عبور نکردی، بعد از غروب بری بیرون مکروه هست. اما اگر شب در منا ماندید، باید رود سیزدهم واجب هست که باید سنگه ها رو بزنید و بعد برید. اگر دواز غروب دوازده نرفتید بیرون. و شب داخل بنا خاویدی بعد روز سیزده واجب ها رو بزنید این تفاوت اینجا هست تفاوتش این است که روز 13 هم دیگه سنگ‌ها رو می‌تونید بعد از فجر هم بزنید یعنی بعد از طلوع بزنید و برید پس روز دهم و دهم سنگ‌ها بعد از دو شروع بشه تا غروب میزنید اگر نشود بعد از غروب بزنید اگر نشود تا بامداد فرصت زدن هست اگر این کار رو باز هم نکردید اینجا یک گزفان واجد میشه روز بعد باید هم قزاز سنج بزنید و هم گزفان دو بکشید این هم لازم میشه پس موازی این آسانه روز دوازدهم ساعت س4 فارغ میشه مستقیم رو جلو میرسی مکه اونجا کسی نمیمونه مگر کسی خیلی ضعیف باشه دیگه خیلی مشکل باشه شاید اون بمانه اما سنت همین است که انسان گزیند هم, هم اونجا بخوابه و سنجار رو بزنه که اینجا دیگه اشکالی نداره پس اینجا دیگه احکام شما تمام شدن این احکام بودن تا انجا حج شما تمام شده میمانه ال خانم اے خانمی در مذیوریت بود اینجا برای خانم ها بگه پس تواف زیارت را روز دخم اگر کسی نکرده روز یازده باید توف بکره یازده نکرده قبل از غروب دوازدهم دو هم باید توافرز را انجام بده اگر انجام نداده و افتاب غروب کرد یه غسفن واجه میشه تاخیر کرده جریمه میآید اما خانم اگر خانم بیمار بود معذوریت داشت نمیتونه طواف بکنه سیزدهون چهلدهم پانزدهم هر وقت پاک شده اون حالت رو انجام بده اما خانم اگر خانمی قبل از روز دوازدهم وقت عطر پاک شده میدونه تا من غسل بکنم درام حرام میتونه سه دار چهار دور به لار تا واف بعد از اص غواص شده فرصت غسل کردن هست تا بره به حرم تا بکنه فرصت هست اما بعض هم گفت حالا اگه امشا غسل بکنه اینجا خابیل چون که سستی کرده یک دوستون برای او واجبه میشه این یک مسئله مسئله دوم اگر قانونی می دونیس وقت معذوریت من حالا دارو بس میتونه استفاده کنه اگر دارو بخورن تا این مشکل ایجاد نشه خالی نداره اما به استفاده خانم می امروز وقت عادت من هست داره میاد روز دوازدهم و فرصت تواف هست اگر بعدا توقف نکر می تا عادت شود اینجا بخاطر تأخیر یک دو باز هم واجب می شود. پس نسبت به احکام اونجا دیگه سهلنگاری نکنه حالا میشه دیگه حالا آدم میشه بعد اینجوری حالا میشه حالا دیگه مکی آمدین ایم. حجر مکی افتون آمدن نیست حج این احکام هست. باید این احکام رو انجام بدهید حالا بعد از این احکامی که اینجا گفته شدن فقط یک چیز بانده تواف ودا خدا خداحافظی هست خداحافظی از حرم هر وقتی که از مکه رفتی بیرون به طرف مدینه یا پروازو به طرف وطن این تواف ودا واجبه اگر یک سال هم داخل حرم موندید روز آخرش میری بیرون تاک داخل حرم هستی واجب نیست وقتی رفتی بیرون واجب میشه پس بنابراین روز آخر از هم میری بیرون پرواز یا به طرف مدینه یا به طرف وطن آخرین کاری که انجامی دهید توافع ودا هست خانومی اگر معذور شد مزیوریت ها شروع شدن و پرواز رسید و توافع ودا را اگر نکرده بود اینجا اشکال نداره و چیزی بر برو واجب نمیشه اما بر آقایون اگر نکردن دم لازم میشه اما این توصیه من می کنم. بعد از این که تواف فرض را انجام دادی، احکام تمام شدن تواف نفر انجام بدید اگر اون روزی که می بری بیرون فرصتی نشد اتوبوس رسید و تواف نکردی همین تواف شما جایگزین همون تواف می شود کسی بیمار شد مشکری ایجاز شد نتونست تواف بکنه، همون تواف قابلیش جایگزین هست و و قبول میشه. این هم خوب توجه بکنید. بکن برای خانمی که مزدور است واجب نیست برای آقایون واجبه اگر آقای تواف زیارت نکرده بود تواف ودا کرد همین تواف ودا جا زیارت میگیره و یک گوسفندی به خاطر ودا واجب میشه و بعد از اون حالا مسئله بعدی وقتی حالا داخل مکه ای این بدانی در مکه مکرمه هر نمازی سد هزار سواب داره هر نماز سد هزار سواب داره حالا با جماعت بخانید ذروع بیست و دم یلیون و هزار اجر برای یک نماز می بری. هر نماز در مکه مکرمه مساد هزار سواب داره. پس نمازهارو قضا نکویی. قایبند مسجد باشید ود، اجرهارو بگیری. چون اینجا فقط همونجا این اجر است. جای دیگه اجر نیست. فرصت داری تواف زیاد کن. تا بتوانی تواف انجام میده. تواف توا خیلی زیاد تواف بکن. برای خودتان، برای مردها، برای دوستان برای پدر ماده. روناها میتونید تواف رو ببخشید این عدد روناها هم میرسه پس روز آخر روز بدان یعنی خداحافظی آخرین کاری که در مکه هست آخرین کار توافی آخرین کاری که انجام میدین توافی یعنی سعی کنید یعنی برنامه هر طور تنظیم کنید یعنی بارها کیفوها قبل هم بسته آماده تحویل بار بدهید تاک بتونید آخرین کار داخل حرم فقط تواف باشه توافر وقتی بیری اونجا نیت تواف میکنید نیت تاواف کردید و بعد تاواف دور کعبه میخاله و خیلی آب زمزم میونوشید تا میتوانی فقط آب زمزم که روز آخره و این آبی که اینجا هم خودتان بیاری نصیب شما شد نشه اینجا دیگه چون سهم دیگران پس اونجا خوب آب بخورید روش سنت همینه خوب تابی آب بخور بعد از اون دیگه با حالت گرییان به طرف بیت الله با حسرت نگاه کن به بعضی لندگانم گیرن این, این درست نیست اما راه خدا است که فقط نگاه کن اما بلوچی چاق کوپار میتونی حالا نگاه کن جلوتر با همه کل قلب دویا مالله از بهت الله و خواسته و نخواسته این کار میشه بخوای نخوای دل از بهت الله کندنش خیلی سخته ما کسی بی باشه اونجا خیلی سخته دوری از بهت الله سختری روز شما همون روزی هستی بیخ از مکه بری بیرون خیلی سخت میشه دیگه اون روزی. فراغ بیت الله خیلی سخته. بعد دعا میخونی، الحمد لله، حمد کثیران، طیبا مبارکا. این دعا داخل همین نوشته و عربیش مشکل است. اونجا دعا میخونی بار الله بار بار من رو دیدار حرم نصیب کو این دعا رو زیاد میکنید. خدایا عوضا بعد العوض برگشت, برگشت ها زیاد مره تن بعد المره ای خدا بار بار نصیب فرما و من رو جز بندگان مقبول خودت قرار بده بار الله اینو آخرین بار من نکن داخل مکه این دعا ای خدا این آخرین بار من نباشه بار بار نصیب فرما ای خدا اگر این آخرین بار من هست و دوباره نصیب نمیشه یا مرگ پیش دارم ای خدا بجای سریبت منو رو بهش نصیب فرما. این دعا رو بیخانی و با اشک ریزانو و اگه دی از حرم کم کم فاصلی می تاک حرم می نگاه کنید و دعا بی کنید اللہ رب العالم میکنه. این لحظه این لحظه سخترین لحظی هست که اونجا دیگه کسی بیره و بخواست به طلب رو بیرون خیلی سخت هست اما دیگه باید این کارو انجام بدهید اما اگر کسی بدار بدارو نکر رب داخل دا دا هتل خوابید دا و تواف بدار فراب اتوبوس رسیده باید تا قبل از اینکه از میقات عبور بکنه بر بگرده و واف انجام بده اگر انجام نداد یک غسفندی واجب بیشه اگر از میقات عبور کرد باز خاص بر بگرده حالا نمیتونه بعد حالا احرام ببنده چون که تجاوز میقات بدون احرام جایزی رفتی مدینه رسیدی یاد افتاد او تا وافدارو بن نکردم حالا میخه مکه برگردی تا اصل 50 کیلوب مسافت راهش دوره احرام ببندید یه عمر انجام میدید بعد از عمره دیگه طواف و داد برمیگردید و میبینید فا اینجا حج ما تمام شده و این خود مختصر حجی بود که اینجا حج را انجام میدن اما سایلی زیاد در مورد حج هست حج قران هست. این حجی تو بود حج قران هست و حج افراد اینها را نمیگم داخل دا کتابی نوشتی اونجا بخود چرا چون اگر بگم برای شما دیگه شاید ظرفیت ها اینها را تحمل نکنن قاطی کن. کنید همه چیز دوباره قاطی میکنید حالا به همین سوره این حال اکتفاق می و این حال رو روید اما اگر کسی تنها نیت حج بسته بود عمر نکر یه حج قران، یعنی حج و عمر با هم احرام بسته بود هنگام ورود مکه اول عمر انجام میده، کسی قران بسته، بعد توافه یه توافه دیگر داره تواف قدوم اسمی این باید انجام بده در غیر این سوره دیگه چیزی لازم نمی شه بعد میره. و مزدلف، عرفات و مزدلفت دوباره منا قبر گشت اما مسئله بعدی این است که گوشت قربانی کنجا میکشید خوردنی برای شما جایز است خلال است خودتان بخورید همیشه داخل فریزدنی داخل هتل هم بیار کواکو بخور اشکالی نداره اما این نقطه که اینجا هست نیت کردن واجبه میری گوزفندو میکشید باید نیت کری این گوسفندی که من میکشم این گوسفند قربانی تمتو من هست. این نیت باید بکنی، خیلی ها نمیدونن این واجبه. فقط میران دو قربانی بکشت، به نیت چی بکشه؟ قربانی، همین قربانی عید تو هست یا برای تمتو هست. پس نیت برای این که این قربانی تمتو من هست، این واجبه. اگر کسی پول نداره، توانایی نداره که قربانی بکشه و حج هم کرده، ده روز روزه بگیره، سه روز را در حج و هفت روز وقتی خونه آمد، سی روز تا قبل از روز نهم باید روز ها رو بگیره. سی روز اول تا قبل از این که به نهم بی بیاعرفاست سی روز روزه بگیره و هفت روز وقتی به خون رسید باید روزه بگیره. اگر سی روز را اونجا نتونست در مکه روزه بشه س روز روزه روز رسید روز عرفات حد عل روزعد که و ایام تشریر روزه نداریم و روز ها رو نگره کشتن قربانی واجبه. ار پول هم نداره و روزی هم نگرفته حالا چه کار کنیم مصیبت شد حالا از احرام بی بیرون سرابت راش لباسا به پوش دوتا تا لازم میشه اومدی خونه اینج بیا دوار پول جمع کن سارهای باکه کسیرات بش پول بده برو برای ما اونجا دو تا قربانی به دوتا گزفن تا بسفند اونجا بکشید غافل نباشید نهارو رو باید خوب یاد بگیرید این هم مسئله بعدی که اینجا شما انجام حالا حالا حج تو حج قران این ها دیگه مختصر میگن فقط یه نقطه بخیدانی اونهایی که اهل مکن اونها نه قران میتونن بکونن این تمتع این یک انعام برای کسانی که بیرون از میقه زندگی میکنن اهل مکه حج تمتو ندارن فقط باید حج افرا حج بکونن رو جدا انجام میدن و حج رو جدا این برای ما هست که نمیتونی اونجا بری الله اینجا گذاشته حالا در مورد مسائل تقریبا کلی همین ها هستن یک مسئله به سلاو مختصران دوباره بگم برای تمتو دهد تمتو خلاص بقید تیتروار پس اول عمره می شما اول عمره انجام میدید تا تواف صفا مروه از احرام بیرون می آید. روز هشتم احرام می بندید میرید مینا پنج وقت نماز زور از مغرب اشراف فجر اونجا می خانی. تا روز نهم روز نهم میرید عرفات روز عرفات بعد از اول داخل عرفات میشی بعد از غروب از عرفات مزدلفه میآید و بعد فجر مزدلفه وقوفی هست میرید منا رمی جمرات میکنی قربانی میکشید میگه مکه تواف زیارت میکنی بر یا روز دهم هم یا از هم سنگ میزنی هر ستارا دوادون سنگ میزنی بر میگردید تواف بدان میکنید تمام شد این خلاصه ایچ بود که ال بذت توضیحاتی قبلا کللا داده بودیم. در حج جنایت های خیلی زیادی هست جنایت ها را هم اونجا عاالمی با شما هست از اون لمایی باش لازم بنا ب پرسید هر جا اشتواه کردی فارت سوال کنید از سوال کردن دیگه شرب نکنید. هر نوع مشکلی ایجاو خوا سوال رو اونجا بپرسید. اما در زمان یک احرامید ناخن نشینید اگر ناخون یک دست کامل چیدید یک گسفه لازم میشه. هر چهاتا رو با هم چیرید دست پا یک گوزفه اگر اونجا نشستی این دست رو چیرید هفت اونطرم نشستی دست چیری، پا چیرید اون ورتر پا چیرید رفت ورتر پای با چیرید چهار تا لازم میشه پس ناخون در زمان احرام نه احرام تمام شد ناخون ها رو میچینید خانوم ها نباده حنا بزنن حنا و کشبو داره و اما لازمی سوا حنا هم استفاده نفرم بوی حنا اونجا نہ با صابون صابون میگیری صابون خوشبو نباشن با صابون میزنند هنگام احرام صابون ها نباشه صابون بدون بو تهیه کنید در احراء از اونها استفاده کنید و پس صابون هم نه لباس دوختی هم استفاده نمی راغن روغن های خوشبو که روز سر میزنن روغن خوشبو هم استفاده رکوید ادویجات خوشبو هم استفاده نمی صورت را هم نمیت پوشانید و بنابراین سی روز سر گذاشتید بالا بعضی روز هر حکت میکنه. برای این چیزی لازم نمیشه اگه چیزی روز سر گذاشت این هم چیزی لازم اینجا نمیشه شودده. زیر بغل را تراشیدن هم جایز نیست اگر زیر و غ تراشید هست اینجا دم دارند و اوبال این همین مشکلاتی دارن که باید جریمها رو پرداخت میکنیم. در هنگام در احرام هستیل مقابت حرام هست، و لوازمات مغاربت بوسیدن همسر نگاه کردن به شرمگاهش دم لازم می شود کسی استمنا کرد دم لازم می شود و اگر قبل از عرفات با همسر نزدیکی کرد حج باطل می شود قبل از رفتن به عرفات حج باطل می شود اما باید حج و انجام بده یوسفندو بکشه ساله بعد بیاید اگر بعد از عرفات ای کارو انجام داد و قبل از تواف تو زیارت حج باطل نمیشه فقط بسپندی واجیه میشه بعده پس این همین ها رو باید رعایت بکنی و کارها رو درست انجام بدید داخل حرم کشتن ملخ جائز نیست قد کردن درخت حرم جائز نیست درخت میبین حلاش مکاری بی ها ندارید مسئله بعدی رو بگم مسئله حج بدل حج بدل حجی هست که بی شخصی مسین نمیتون حج بکنه اما سرمایدار هست اینجا برای او واجبه که کسی رو نائب خودش برای حج بفرسته مکه این مثلا اگه امروز کسی رو نائب کرد برو برای من حج بکن اما قبل از این که وفاد بکنه درست شد مثلا مسینی هست بیماری هست نمیتونه حج انجام بده کسی رو وکیل کرد حج انجام بده وکیل اگه برای انجام حج راست و بعد آقا قبل از وفاد خوب شده اون حجش نفله بعد دوباره خودش هاجره انجام بدهد ها اگر پدر و مادر سفتنام کردن اما فرصت نرسید وصیت کردن برای ما حج بکنید حج اونها باید وصیت بکنند که اگر موافقت کردید حج ما رو انجام بدهید اگر وصیت هم نکردند یکی از فرزندان برای فرض پدر و مادر رب ادا میشه الله میپذیره بر پدر مادر حج فرض شده بود وصیت هم نکردند افاد کرد و رفت یکی از فرزندان رفت حج و انجام داد الله رب العالمین از او می پذیره چون همین سوال صحابی پرسید یا رسول الله پدر با و تونه مسیح نس آیا من حج پرم گفت بله لی حج بکم الله هم می پذیره پس بنابراین اگر بعد از اون که احرام بست کسی که میره حج بدل میکنه اجازه حج تو نداره اینه بدونی اگر کسی از شما برای حج بدل میره این نباید حج تو بکنه حج تو برای او جایز نیست فقط حج یا قران یا حج افرا اگر تنها حج احرام حج میبنده یا احرام قران میکنه از چرا چون باید این احرام از میقات کسی باشه شما رو دست داده باید با این میقات باشه اگر حج تو کرد اون نیت حج از داخل حرم هست از داخل حرم هست پس اونجا دیگه نیت از میقات نشد و حجش ادا نمیشه حج مال شما میشه و جریمه ها باید فرداخت بتونی به آقا پولها رو پشت بدهیده پس وقتی کسی حج قران میره در حج قران یا حج بدل در حج بدل باید نیت بکنه من از طرف فلانی حج میکنم احرام را از طرف فلانی میبندم اگر نیت نکه برای خودش نیت کرد حج برای خودش ادا میشه پس معاذه باشی در حج بدل هم ح کمی پیچیده تر هستند کسانی حج بدل میره این کارو انجام بدهند پس به هر حال مسائل بعدی که وقتی شما حج رو تمام کردی دیگه حالا مختصر چون از آن شد و زیاد وقتی هم نمانده حالا این مختصر احکامی هستند در مورد حجی بعد از اون دیگه زیارت شهر مدینه طیبه شهر اشاغ کسانی که عاشق نبی هستند مدینه را بس سکونت انتخاب میکنن پس مدینه منوره مدینه طیبه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که از به اصلاح جهاد برمیگشتن و مدینه وقتی میدید اسرع السیر سری سر خود را مدینه میرسان سری سری میرفت و وقتی که از خیبر برگشتن و فربودن که هذا جبل هذا یحب جبل و ولا این کوه احد است این ما با او محبت داریم ما او را دوست داریم و اما را دوست دارد. نبی مکررسلام صلی اللہ علیہ وسلم برای مدینه دعا زیاد فرمودن حضرت صدیق اکبر وقتی مدینه منوره آمدند، چون داخل مدینه اون زمان یه ووای بود بیماری هر کس میرسید بیمار میشود صحابه اکرام بیمار شدن او باق صدیق رضی اللہ تعالی رو هم وقتی رسید مدینه بیمار شد ایک روزی با کل من روی فی اهلی والموت اقرب بشراک نالهی میگه انسان خون بی غافل از این که مرگ از تسمه کفشش نزدیکتره یاد مکر می کرده و حضرت بلال هم دیگه برای فراغ ماکه مکرمه شعر می خون هل ابیتن لایلات اشی میشه بخوابه ماکه اطراف زمین بوته ها از ازبین خار و سنگ باشه نبی مکرم مکر اسلام مطلع شدم دعا فرمودن بار الها مدینه رو برای ما محبوب قرار بده به صورتی که مکر رو ما داری بلکه محبت مدینه را بیشتر از مکه بگردان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره بر همیشه آرام می‌فرمایند جایی که نبی هستن اون زمین از تمام کائنات افضل تره چون چرا چون خود نبی اشرف المخلوقات هیچ چیزی از نبی افضل تر نیست جایی که نبی هست اون مکان از تمام کائنات و مخلوقات تر هست پس برابری در جنگ هنین وقتی نبی مکردستان جنگ تمام شد در مقام جیرانه تا فد شد جیران رسید. به داستان کوچه که پیش رو با. نبی نبی مکردستان صلی اللہ علیه وسلم از غنائم،, از غنائم جنگ هنین به اهل مکی تازه مسلمان شده بودن به هر نفر 100 تا شطور میداد. به ابو سفیان 100 تا شطور داد. 100 تا شطور. افرادی اومدن هر 100 تا شطور تا وقتی نبی مکرم اینجوری شطور عنایت میکرد، صفوان ابن امیه که تازیر و سلمان شده بود، دو بزرگ، مکه بزرگ مکه بود، قسم خورد این پیغمبره. کسی داره به هر نفس پد تا شطور داره اینجوری انایت میدونه برای ماه های و سلمان شذین این سخابات از انسان معمولی امکان پذیر نیست حالا ست تا صد تا دادن هر نفری حالا ما بگیم 200 میلیون تومان به هر نفری یک میداد نزی این چندین میلیارد اونجا نبی کری انفاق کبونها داد بعضی از جوانها کلماتی به زبان آوردن چه گفتن اونها گفتند که شمشیرهای ما هنوز دار از خون اونها میچه که و شترها موندا دار میگیرند میرن یعنی ما از مدینه آمدیم اینها رو گرفتیم حالا وسلمان کردیم معرفت کردیم و هنر کردیم کردیم طائف و جیران وفات شو این کارارو ما کردیم شترها رو در ابو سفیان و صفوان ابن امیه و بغیدارا شترها رو میگیرند و میرن در حال هنوز شمشیرما از خون اونها خشک نشده این خبر به نبی کریم رسید نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم صحابه کرام را همون انصار را در یه جای خاصی در یه سایبانی جمع کردند. فرمودن اینجا فقط انصار بیاد مهاجری نباشند. چرا؟ چون اشکال و انصار گرفتن مهاجری که از خودش بودن مهاجری از اهل مکه بودن قرش اونها اعتراض نکردن انصار اعتراض کردن فقط انصار اینجا بیاد سوال کرد. هیچ کس نیست غیر از انصار گفتن نه تنها انصار الا یه ما. از ما انصار نید فرمودن که ابن الاختی ابن القو جو جز شما اصابیش حالا بمانه بعد فرمودن که این چی خبری داره از شما من رسیده شما دارید میگید که داره اونها را و ست تشتور میده و ما دستخالی برمیگردیم بعد بعضی گفتن بزرگان یا رسول الله این حرف حرف ما نبوده این حرف حرف همین جوانک بوده ما چنین حرفی نزدیم جوانه ها حرفو زدن ما حلال کردیم. گفتن نه. اگر شما راضی نیستید در اموال غنیمت بعدی هر چه براتید من به شما میدم اینها رو من تقسیم کردم و اگر راضی نیستید دوباره به شما عنایت میکنم و اگر راضی هستید چیزی گفتن نه ما بخشیدیم گفت نه این فزیرفته نیست برید با هم مشوره کنید هر کسی راضی نیست چند تا نماینده تیشو من می‌فرستید تا که همون خبر شما رو برای من ابلاغ کنه همه یک نواخت گفتم ما راضی هستی اعتراضی نداریم. بعد نبی مکرم السلام صلی الله علیہ وسلم همه رو جمع کرد فرمودند که مردم اهل مکه مانند پیراهنند برای من و شما اهل مدینه مانند زیر پیراهنی برای من زیر پیراهنی به من نزدیکه؟ شما برای من نزدیکتری از اهل مکه بعد فرمود اگر هجرت اجر بزرگی نمیداشت من تمنا میکردم کردن ای خدا منو یک شخصی یک فردی از اهل مدینه قرار بده با فربودند که الا طرزانه اگر جناثو به شای و و ترجعون الله راضی نیستید که مردم با گاو و گوسفند شطور به خانه ها بگردند و شما با رسول الله برمیگردید میرید کدوم بهتره رسول الله بهتر یا گاو شطور بهتره آنها دارن گاو شطور میگیرند و میرن اما شما رسول الله با خودت میگیرید میرید فربودند که زندگی من با شما بوده و مرگم با شما خواهد بود فکر نکنی من دواره مجمع کی بر نه این فضیره مال شما هست اگر نبی کریم مدینه نمیره میره مدینه مدینه حالا نبود عربستان خیلی شهر داره شارعاش ما نمیدونی فقط سه تا از شارع دونی مشهورم معکہ مدینه جاده طائف شارع دیگر دونید این فضیلت را نبی مکرم اسلام به ارمغان آوردن پس اون نقطه خیلی مهم بود که رازی نیستی این حدیث صحیح بخاری هست مردم با گا و گستان و شما با رسول الله ترجعون بر رسول الله ل الرحاله بخونه هایتون پس این شهر مدینه شهر مدینه شهر عشاق شهری که اونجا جبرائیل امین همیشه وحی را می آورد روز یک نبی مکرم اسلام وفات کردند اون ایمن اصحابی بودی که غلام خود نبی کریم بود خیلی گریه میکرد و او صدیق رضی الله عنه با حضرت عمر فارو برای ملاقاتش رفتن گفتن چرا غیبی میکنید از این نبی کریم وخافت کردن گفتن نه قبل از نبی کری همیشه جبرائیل می آمد حالا جبرائیل هم نمیاد اون انوارات رب از اینجا منقطع شدن و خاطر این گریه می روزی که نبی کری پا در مدینه گذاشت انس میفرمان امین و کل شاین هر چیز مدینه نورانی شد برق میزد و روزی که نبی وفات کرده از لمین و کل شاین هر چیز دی مدینه شده. روز نبی کریم وفات کرد. اناس میگه اون روز که نبی کریم وفات کردن قلبهای ما کلن حالت دیگر به خود گرفتن. پس شهر مدینه مناوره شهری معمولی نیست. حضرت امام مالک رحمه الله ده سال در مدینه منوره کفش نمیپوشیده که جا شاید من رد نبی کریم زیر پا بگذارم. از شهر مدینه فقط یک بار برای حجره از ترس این که شا و مرگ برسه و من از مدینه محروب بمانم مدینه طیبه شهری بسیار زیبا حفی حدیث روایت کردهند حدیث روایت کردن حدیث دوباره براستوا بخونم میگم بلال وقتی که نبی کریم وفات کرد مدینه رها کاری و داخل شهر یک نبی نباشه من نمی‌تونم زندگی کنم راست رو به می رسام یک روزی خوابی دید خواب دید نبی کریم به اومد گفت بلال خیلی بی ما رو فراموش کردی زیارت من نمیای دیگه بلال از خواب پری دیوانه وار دیوانه شد بهتره مدینه منوره حرکت کرد اومد مدینه منوره نماز تهت المسجد خون را پیش رازه نبی کرد اونجا گریه کرد گریه کرد قادر گریه کرد گریه کرد که آل نبی کریم گفتون مدینه نمیای وقتی صحابه کرام دیدن که بلال اومده همه تقاضا کردن بلال امروز عزا میده تا همون عزای نبی کریم تو یاد نبی کریم زنده چون مؤذن نبی بودو بلال وقتی بالا آره بر آن گفتن تو الله اکبر الله اکبر صدای بلال وقت داخل مدینه منتشر شد می خانوم های دوشیزه از از بیرون آمدند گفت امروز روز پیغمبر است این همون روزی است نبی کریم بود چرا امروز اذان پیغمبر است امروز روز نبی کریم زنده شد حتی خانمها از پرده ها بیرون آمدند که امروز روز روز دیگر است امروز شهر مدینه منوره شهری بسیار عجیب هست پس بعد از اون مدینه منوره مشرف میشین نبی با کردیسان فرمودن که من حج و علم یه فقط جفانی حج کرد و منو زیارت از این نکرد زلم کرد بر من حالا بعضی گفته حدیث زیفه اما مجموعه حادیث این رو به درجه حسن میرسونه فرمودن کسی حج کرد بعد حج بیا برای بلاغات من شفاعت من برای او واجب میشه من برای شفاعت میکنم میری مدینه در مسیر مدینه منو سوار اتوبوس درود می با یک قلبی پر از شوق هر چه سریعتر مدینه برسم مدینه برسم و میری مدینه منو مدینه رسیدید وهلا هوا در تمام میشه مختصرتر میگم مدینه که میرسید اول سعی کنی ال لباس زیبا بپوشید عطر زیبا بزنید با شکل زیبا در حرم الهی وارد بشید دعا میکنید ای خدا این حرم پیغمبر هست. ای خدایا این حرمی که جدار من وارد میشن اینو برای از عذاب قیامت من برای من پردی قرار بده لباس میپوشید بعد میری مسجد النبی ایکی از صحابه کرام عبد عبدالغیس وقتی آمدن مدین طیبه در زمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالا برای بلاغات اومدم. صحابه کرام مشتاق دیوانوار سری رفتن مسجد النبی تا نبی رو بلاغات کردن تازه و سلمان شده بودن اما سردار نشست شطرها رو بس بارها رو پاین کرد غسلی کرد لباس زیبا پوشی، با خیلی آرامش در مسئل نبی دور که نماز خانده سلام که اسلام علیه رسول الله نبی که فرمو دن که اشج در تو دو, دو خسلت خوب هست اونا چیان؟ یک صبر، دو بردباری. گفته گفت که اینها رو من دارم تصنو میکنم یا اللہ خلق کرده گفت نه اللہ در تو گذاشته. که الحمدللہ که صفات در من هست الله دوست داره این صحابی با این لباسا نبی کریم تعریفش کرد پس نماز می‌خونید لباس می‌پوشید قصری می می‌کونید بیرید داخل داخل مسجد النبی سعی کنی در ریاض الجنه حالا ریاض الجنه رو بیا این هست ریاض الجنه در ریاض الجنه دور ک نماز تحیت المصلی اما شما اونجا نمی‌رسید اینجا خیلی ازدهام هست حد داخل مسجد النبی دور ک نماز می‌خونید اگر وقت نواز بود نواز می‌خونید بعد از اون از باب السلام باب السلام این وارد است باب السلام نیستش از باب السلام وارد میشید بعد با آرام اونجا حول نمیدید سر صدا نمی کنید بی احترامی نمی کنید چرا الانبیا احیاءن فی قبورهم مسلون انبیا در قبر ها بی احترامی جایز نیست حالا این کی از ذرات مسل نبی هست از باب السلام وارد میشید الا خوبلی از باب السلام وارد میشی با آرامش آرام آرام درود میخانی میرسی پیش روزه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم الا دعاه رو جا منویشتی اما اونجا یک دعای میخانی دعای اونجا میخانی سلام میگی السلام علیکم یا رسول الله السلام علیکم یا السلام علیکم یا خیر خلق الله السلام علیکم یا سید ولد آدم السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة إن دواعي طلاني هس على ما هم بخانش ما نمي دون يفستوري أذهب من جاي يفستوري، أم إن هس روزي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن جا ميرسير إن جا بالا نوشته هن... جا هنا السلام على رسول الله إن جا سلام بيديل خالا نبی کریم داخل سوراخ شما می میبینی اینجا داخل چند دیوار هست نبی کریم اونجا شما یه دایره کشیده میگه این قبر نبی کریم اما شما دیگه فقط جلو میستی دست روی این ذریه نمیذارید اینها شرکند ذریه رو نمیبوسید ذریر آستجده نبی کولید اینها جایز نیستن شرکند فقط اینجا میستی مقابل وی این معموراق اینجا که شما رو هم برای توقف نمیذارن فهمید نبی اسلام علیکم علی رسول الله کافیه آرام سر سر اسلام رسول سر کې سرپایي بي السلام علیکم یا رسول الله السلام علیکم یا حبیب الله السلام علیکم خیر خلق الله السلام علیکم ای یوه نبی و رحمت الله و برکاتو هميغه څنګه دګی میر جلوتر انجا او ابکر صدیق هست جای کې پای نبی کریمه سر او بخ گذرځه انجا سلام میکنه بیس صدیق اکبر السلام علیکم یا خلیفه الرسول الله بعد ای ابکر صدیقه جلوتر سلام میکنی به عمر ابن بعد میری بیرون. سلام شما تمام. مدتیک اونجا هستید. سعی کنید همیشه این کار رو انجام بدهید. این فرصت همیشه گیر نمیاد. تعمیرسی سلام کنی برای بعد هر نماز سود برو سلام بده برگرده برو. شما کاری به افکار ما اردو نیاله بعضی اوقات که نهایی است. اینها نه. اسلام ای سلام بر رسول الله که اینجا کلا ترتیب همین است. سلامو اونجا بدیم. بعد میری یازول جننه. یازول جننه در یازول جننه. این قسمتی که اینجا هست روزه نبی که اما پشتش از اینجا این منزل نبی کریم بود اینجا اون قدیمها منزل بوده و روزه نبی اینجا نیست این که محراب هست اون وره هست خونه نبی کریم فهمودن که من بین بیتی و منبری روزه تو من, من ریاضی از خونه من تا منبری من این قطع زمین باقی از بهشت هست حالا چه جوری یا از بهشت آورده شده یا به بهشت میری اما این قصه زمین باقی از بهشت این همون جایی هست که امام بخاری رحمت الله علیه اینجا کتاب صحیح بخاری اینجا نوشتنش شروع کرد ابواب را اینجا ترتیب داد اینجا خیلی مبارکه سایه قری فرش سبز رنگی هست در همون فرش سبز رنگ ریاض الجنه و, و اینجا که هست این محل محراب نبی که نه این تو اینجا محراب نبی کریم است این مهرابی که تقریبا سمت محراب. سمت راست خود میحراب نه سمت راست اینجا محل سجده نبی کریم بوده اگر توریست اینجا قطعا دور نماز بخونه خیلی متبرک است این محل سجده نبی کریم بوده حدیثی دارید داخل صحیح بخاری حدیثی هست که حضرت عبدالله ابن سلام ب... این میحراب نبی کریم بس پای اون قسمتش که محل سجده نبی کریم است اونجا 20 دور کردن خیلی مبارکی هست. داخل صحی بخاری حدیثی داریم عبدالله ابن سلام یک صحابه بود بریم خونه ای من، برین خونه ای من، بیت آمیدن در ظرف نبی کریم آب خورده و جایی که نبی کریم نماز خونده، اونجا دور که نماز بخو. این عمل صحابه بود، روش صحابه بود. و همچنین اتباع ابن مالک داخل سهی بخاری حدیثی داریم فهمیدن که یا رسول الله بین من و بین مسجد و نبی ای هست من پیل مردم، نمیتونم مسجد برس وقتی باران بیا، بیا خونه من دور کن نماز بخوان. تا سجدگاه شما رو ما سجدگاه بگیره جا تو نماز میخوانی من نماز بخونم نبی بکرلیسه خونه اشرف تو رو که نماز خون همون جا رو برای خود همیشه نماز میخون پتر نجای شما میگیرم این روز هست همین تک زمین که ریاض الجنه هست و, و همون قسمت نبی که نماز خونده حالا بعد داخل خود همین ریاض الجنه هفته استوانه هست هفته ستون هست این استوانه ها جنو رشتی این استوان آئیشه حالی استوانه تو سریعی دین این استوان آئیشه او استوان آئیشه بگم این ستونه ها این بنا بنای تورک ها, ها این تقریبا هفتت سال از این بنا رد میشه کامل هست، سامی نشده و از امیر یاد رجنه میخواید محسود نبی رو اندازه بگیری زبان نبی کن چقدر بوده؟ از همونجا بری بی بیرون بیرون بی بنا تقریبا آخر اونجا نوشته تا اینجا مسجد نبی بود زمان نبی کریم بالاستونها نوشتن با اما بیرون از صحنه بیرونش زیر چترها ها اونجا مشخص با یک رنگ سبز رنگی مشخص کردن استوان آیشه هست رضی الله تعالی نها چرا میگه استوان آیشه نبی مکربستان بودن آیشه در این مسجد من یک نقطه زمینی هست اگر مردم بدونن کجا هست باید برای رفتن کنند. و نبی کریم و شخص خاص نکردم فبرای حضرت عایشه گفتم اینجا هست بعد حضرت عایشه به هر زادیش عبدالله ابن زبیر گفتن این همون جایی هست که نبی که فرمودن این محل اجابات دعا هست اینجا دعا قبول میشه پس بنابراین اینجا دیگه برای دعا بکنی استوان سریر هست استوانه سریر جایی که تخت نبی کریم اونجا گذاشته میشه رختخوابش استوانه وفود است اینجا بلند نوشته عایشه بعد ها انجا استوانه وفود هست استوانه وفود جایی که ارتشا گروه نمایندگان نمایندگاں یک آمدن ایک گوشمین شاست نبی کریم انجا تشریمی بوردن استوانه ابو لبابا هست استوانه ابو لبابا جائی هست که ابو لبابا در جنگ بنو قرعزہ ایک اشتبائی کا ایک سیر لفاظ کر نمایندگو از نبی کریم بر باب یهودیہ صحبت دو یهودیہ گفتن اگر ما اگر ما تسلیم بیشیم چه میشه تو اینجوری میشیش شما یعنی کشته میشی با متوجه شو او من که انجا حرف خوبی نزدم. مستقی اما مدینه منوره خود رو همون ستون بست گو تازوان نبی کریبا باز میکنه من خود را باز نمیکنم. همونجا همون بسته گذاشت نبی کن خورسیز که ابو لبابا کجا گو رافت مدینه مناوره فربود حالا من هم باز نمیکنم. اگر مستقی پیش من می که من میبخشیدم. حالا الله اللہ وقت شد اللہ نازل کرد و اینجا محل قبولی دعا هست استوان حنانه هست جایی که همون درخت نبی کریم تکیبی زد و خطب میخوان. دوباره حنانه گریه کرد وقت نبی کریم روی منبر رفتن حنانه گریه کرد و دفنش کرد و قیامتن دوباره این بیتمند انسانها و اینجا هم استوان حنانه چند, چند دین استوانه انجا هستن این استوانه داخل مسجد و نبی هستن بعد از اون زیارت بقی هست زیارت قبرستان بقی جایی هست که سی هزار صحابی اونجا خوابیدند از متحرات مطهرات اونجا خوابیدند اهل بیت نبی کریم امام باقر اهل بیت حضرت آی حضرت فاطمه حسن حضرت امام حسن در همین قبرستان بقی خوابیدند حالا راه ورودی اینجا نیست راه ورودی این واسه اینجا رای ورودی تقریبا از این قسمت این ورودی قبل این قسمت این قسمت اهل بیت نبی کریم امام باقر و امام حسن حضرت اسرزی الله تعالی اینجا خوابیده و از اول مطهرات تقریبا این قسمت حضرت عثمان رضی الله عنه جلوتره جلوتر بیا, بیا تقریبا این قسمت این قبل حضرت عثمان ابن عفان است که اون زمان خوش خوشکوكب میگفتن الله نفسر تغییر دادم قبلستان بقیه در این قبلستان سی هزار نفر از اون تروانه های نبی کریم جا خوابیدین. فا از روز جمعه بعد اصل بسیار کنی بونجا بریدو و اصلا داخل خود قبلستان دعا بکنی زیارت بکنی نبی کرین زیارت می رفته. بعد میریم احود. قبلستان احود جنگ او حالا فرصت نیست برای توضیح دادن احود. اما در احود این هم این چاردیواری که می بینید این چار قبر حضرت حمزه رضی الله تعالی و صحابی ابن عمر و عبد الله ابن جاش اینجا در این قبرستان دفن هستند اموی نبی کری که نبی کری اینجا این اینقدر گریه کرد به خاطر از دست دادن حضرت حمزه خیلی گریه کرد و حمزه شهید شد حضرت صفیه رضی الله تعالی عنہ خواستن بیا مدینه مناوره به خود نبی کری فرمودن که زوبه برو مادر تو نظر بیاد رفت دلوش گفت مادر برگرد چرا چونکه برادرت از ببینی کلا موسیله شده بادرش تکه تکه شده حالا نمیتونی نگاهش کنی بعد گفت نا من باید برام اینجا رسید اینجا محل حضرته این مدار جنگ بوده مدار جنگ اینجا بوده این ورد حالا این هست جبل و رومات پشتا بیا پشتا این, این این این هست جبل و رومات جبل و رومات جایی هست که پنجان فر دیدوان بودن برای مشرکین که دواره دیدوان محلو ترک کردن و پشت, پشت این کود ای هست این پولش اینجا از این پشت دار زدن و سلوانه ها شکست خوردن. اما این احود برو اگه برو پشت حالا تقریبا این احود تقریبا این کوی احود از جنگ اینجا بوده محل جنگ دواره نبی کرده اونجا غاری بود اونجا استراحت کردن و مداوا شد روز جو شنبه رفتم به احود مسند و مستحبه بعد روز شنبه، روزهای شنبه در مسجد در مدینه عذو برای دور کردن واس میرید کجا؟ قبا. روزهای شنبه سنت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم روزهای شنبه قبا میرفتن. فرمودن هر کسی در مسجد قبا، اولی مسجد هست که در تاریخ درست شد. نبی مکرم اسلام در ورود در ورود به مدینه منوره این مسجد را درست کرد. 15 روز تا 21 روز در قبا مان این مسجد را درست کرد و فرمود هر کسی در این مسجد مدینه وضو بکنه، خونش وضو کنه، اینجا دور بخونه، اجر یک عمر به او میرسه. بیرور خود مسجد قبا بیرون از اون در بیرو هم زده اونجا حدیث و نویشتن که محل قبولی میگن در این مسجد قبا جای نبی کریسو کو داشته، جلوش اینجا قدیمها یک دی اتاقی بوده که بوی عطر همیشه بیرون شد تا اینکه تخریب کردن مسئله تواصلی علو تمام شدن بعد از اون حالا مختصر وقت نماز رسیده چیزی زبونده حالا مختصر بگم بدر بدر از مکه از مدینه منور دور هست بین مکه و بین مدینه قرار دارم پس خود بدر این است بدر اینجا بدر باید خودتان برید ماشین بس میکنی هزینه میکنی بعد میرید اینجا شهده بدر هست. افراد بدر شهده بدر و کسانی در بدر شرکت کردن حدیث صحیح بخاری بهترین مسلمان ها هستند. جبرائیل امین سوال از نبی کریم پرسید یا رسول الله این اصحابات در بینشمان چه جایگاهی دارن؟ فرمودند که من افضل المسلمین از بهترین مسلمان ها جبرائیل فرمودن که فرشته که در بعد نازر شدن اون فرشته ها از بهترین فرشته به ما هستند. این بادر هست و حالا اینها قبرستان قبلستان بادر هست تقریبا بی پشت اینو ای تقریبا این قسمت این قسمت این قسمتی که اینجا هست پایینتر این قسمت ای دیدی دو. این محل فرود فرشته ها جایی که جبرائیل امین با هزار تا فرشته تا 2000 تا تا 3000 فرشته اینجا فرود آمده این منطقه بوده اینجا بیرید به دو هست صحرای خیلی زیبایی هست نخلستان هست با اغات هستن یه شهری هست و این قبرستانه بود بدر و محل بعد که بهترین جا هست و ان الله, الله رب رب العالمینوار نصیب فرماید حالا بناوری این احکام شما تمام کوتاهی بوده کم گفتی زیاد گفتی الله اول الله رب العالمین مغفرت فرماند ببخشه و شما هم دیگه هر خود رو ببخشید شاید وقت شما گرفته شو زیاد صحبت کردید شاید مفهوم نبود در حال الله رب العالمین حج مبروری نصیب فرماند سالمان غانمان برید بر بگردید مانند روزی که از مادر متولد میشید کسی حرج قبول بشه گوی تازه از مادر متولد شده ان شاء الله مشرف شدید حتما این روز را یاد کنید و و دعا بکنید قطعا یاد میوفتید اما دعا بکنید. یاد افتادن که میوفتید چون حالا این هر گفتی تو ذهن شما اونجا مرور میشه اما دعا رو حتما انشاءالله بر یک حاضرین دعا که الله رب العالمین همه ما شما و تمام سالمانهارو قرین شدیف نصیب فرماید لبيك الله ومر الـ لبيك